بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا رسول الله و آله طیبین و المعصومین و لعب دائمت و علی دائم مجمعین اللهم افرنا جمعی المشغلین و خمنا رحمتی که آفر شد که یه روایتی بود مال عبدالرحمن بن سیابه یا سیابنشون رفت اسمش درست اینجوری چی بوده؟ قال سمع تو عبد الله علیه السلام یقول راجب این روایت یک بحث سندی هست، بحث رجالی داره به اصطلاح به لحاظ خود عبدالرحمن بن سیاب البته بحث رجالیش انحصار بیشان نداره در سعد کافی بحث رجالی شاجب به محمد بن ایسا هم هست که محمد بن ایسا آیا قابل قبول یا نه؟ امروز این کتاب معتبر رو آردن اینجا با خودم مرغوم محققی اشکال میکنه که ابن بابه از استادش نعل کرده که روحات محمد ابن از یونس قبول نداری به هر حال تا اونجایی که من تو ذهنم ابن بابه ای نرمونه میکنه این رو مرغوم یه چیز نرمونه مرغوم شیخ ترسی نرمونه حالا ای محمد بن عیسا یونوس یک اشکال سر محمد بن عیسا است که دیروز اشاره اجمالی کردیم خلاصه بحث اینه که عرض کردیم مرحوم ابن نوح می‌فرمند بین که بعد از اینکه کلام ابن ولید رو در اونجا یعنی در بحث نوادر حکمیاره میگه قال شیخنا ابن نوح اسا به شیخنا ابن ولید الا در محمد بن عیسا چون مرحوم ابن ولید ادعی از روایات کتاب نوادر الحکمه الله این کتاب یونس اونجا هم استثناء کرده یک تعبیر خاصی مرحوم شیخ شیخ نجاشی که استثناء نام میکنه از ابن نوح استادش از کرد ایشون هم مرد بزرگوار و جایقدریه انصافا هم در کتاب شناسی فولاد است هم در رجال مرد است و شاگردی مثل مرحوم نجاشی هم داره که زیل و غدره. و چند بار شاد حالا عرض کرده باشن در خلال بحث ها یکی از است که شیخ توسی از اشان نقل نمی یعنی این دو نفر نگار ما مرحوم شیخ مفید مرحوم شیخ توسی و نجاشی هر دو عهد بغدادن و معاصرن هستن اما نسبتن عدد نسبتن معتنابهی شاد ایش از 50 درصد مشایخ نجاشی نجاشی مشایخی داره که شیخ طوسی از اون نقل میکنه یکیش هم ابن نوحه البته مرحوم شیخ میگه که ایشان بصره بود و رضا من خدمت ایشان نرسیدم مضافاً نمیکنه که دارای مذاهب فاسد در مسائل کلامی بوده مثلا قابل به رویت قابل به رؤیت خدا بوده مثلا نکهمت چون ربکم یومالقیامه صلوات مأروه ابو هرث علیه الاله مرهوم ابن نوح البته احساس ما اینه که ابن ولید از ایشان قوی تره و هم کتاب شناسیش و هم رجالش و هم فقهش و هم بانی علمیش کاملا دقیقه مرهوم ابن ولید که کم به ما از آثاریشان رسیده اما همون مداد کرده خیلی دقت و ظرافت نظر مبارکیشون رو داره ناشی هست بلی حالا خب صاحب هم قاله به سربان نبی مثل صدوه ما این که معروف علمان ما سربان نبیه پیش این چیش میاد دیگه کسی صدیقی خودشون دردیه علایه که به ماکان یه درس سنده کافی اشکال به محمد ابن ایساس و از کردیم ما اون نقطه رو ارز کردیم خب این تعجیم میکنیم از مثل مرموم محق به در نشده از کار ابن ولید از حرف ابن الولید مرحوم شیخ طوسی تذییر فهمیده خوب دقت کردیم اما شاگرد ایشان یعنی شاگرد که خود شیخ صدوق باشه تذییر نفرمیده این رو من از کردم توضیحات بیشتری میخواد جاش اینجا نیست امروز اشاره کردم چون امروز هم مرحوم معارف قدس الله انسه تو معتبر ورده دقت بکنید مرحوم شیخ توصی از عبارات ابن الولید فهمیده که این تضعیف محمد بن یزید شیخ طوسی فهمید و لکن از کردیم انصافا شما شاید ببین مثلا نجاشی و استادش ابن نوفل نه اونا معنی فهمیده باشن حالا اون بحث دیگه نیست می‌خوام وارد اون بحث شیم چون طولانی ادامه بده ابن نوح نه فهمید تضعیف رو شیخ توصی تضعیف فهمیده لکن خود مرحوم شیخ صدوق خود شاگرد ابن ولی توصیل تضعیف نفهمیده دلیلش همینه در کتاب فقیه از محمد ابن ایسا نه میکنه تضعیف نفهمیده اون چه که ایشون فهمیده نسخه کتاب یونوس برایت محمد ابن ایسا نقل نقض نمیکن اینه فهمیده بل درست اما از نفهم که محمد ابن ایسا ضعیفه این ممکنه علتهای دیگری داشته حالا یا مثلا چیزی مشکل داشته یا خود محمد بن ایسا الان یا حالا پس اونی که الان در این روادت طریق کافی است، یکی محمد ابن است. من چند بار عرض کردم در کتاب کشی منفردن و این عبارت هم نجاشی نداره در محمد بن ایسا داره کانه از کی نعمل کنه کان یعنی محمد بن ایسا کان یهولو به تزید اینم الى الان ما رفتم مثلا 37 سال این فکر می‌کنم از معلاش نفهمید که این تزاید چیه یه مبنای کلامی است چون پس تو کلام ما بحث داریم که مثلا من با مثال علی ایمان یزید را یا نه علی ایمان داره یزيد لاین پس چون همین رو بود ایمان داره این قضیه چیه در مقابل مشهور میگسن خود داره لذین مزداد و ایمان ایمان زیاد و حالا کان یقولوا به حالا این مذهب مذهب در صفات باری زیادیه صفات در آی بر ذات نمی‌دونیم مثلا این عبارت خانه یقولوا به تزیید ازشون خانه یقولوا به تزیید یه عبارتی از قاموسن ساهاد یتزیید و فی یک زبفی که مثلا ایشون دروغ می‌گفتن اصلا جالب اون که نیست اون که که یقولوا به که نیست یا تزید یک تزیید و فی یک به بدر پشت آثاری از ذیلیت درشان نیست به هر حال ما که روز نفرمیدیم که به اخره چون راست میشو گفتیم چون. که اصلا این اب... چون در کشی هم آمده نجاشی هم نیاورده بعد از ایشان بعد از نجاشی توصیفش میکنه و کان یقول یعبون... کان على ظاهر العداله و الصغه نقل از ابن نو که محمد بن عیسی کان على ظاهر العداله و الصغه و از فضل ابن شازان کانال ایشان یوسف میهله و یعجبوه و گل من مسعودی جعفر محمد بن عیسیان علایاه این شواهد در وثاقت ایشان جای بحث نیست اون چه که جای بحثه بعضی از روات ازتون میگم جای بحثه چون کلمی یقولو بتزید اگه بفهمیم مشوشش کنار بذاریم چون نفهمیدیم معنی اون عبارت یکی از جایی که اون رو نفهمیدید شاد 37 سالو شرکت به نتیجه واضحی تصادفا این لطف مرجوم اینا مرقوم محمد محمدخان قزمی علامه قزمی یه حواشی واقعا لطیفی به کتاب تاریخ جهانگشا مال عطا ملک جوینی داره اونجا هم تو حاشیه‌ش بحثی راجع به محمد بن عیسی داره هم میگه من میگم من نفهمیدم کانیع قلوب تذی یعنی چی هرال این ده نفهمیدم ما درست مثل هم همین این کانیع قلوب تذی در محمد بن عیسی یعنی چی علایها یه بحث راجع به ایشان محمد بن عیسی که از کردیم هم وساقتش قابل قبوله هم نسخه ای که از یونوس مثلا مرغوم کلینی خیلی بین از این نسخه نقل میکنه و مرغوم صدوق در فقیه اصلا نقل نمیکنه بله در خسال و عمالی اینا نقل میکنه از این نسخه. در فقیه نقل نمیکنه یه اشکالا سر عبدالرحمن ابن سیابه است که آیشون سقه هست یا نه دقیق بکنید نه نجاشی در فهرستش اونها شیخ اسمیشون ایشونو آورده این معناش اینه که مرحوم عبدالرحمن سیاب کتاب نداشتیم یا الا تدبیری هم که داشته باشه به ما نرسیده هرکس من یکی از مزایای حدیث شیعه که روش کمتر کار شده چون ما فهارس داریم به برکت فهارس میتونیم تشخیص بریم این حدیث کی مکتوب بوده کی شفاهی بوده در اهل سنت این خیلی مشکله اما در ما خیلی راحت این خیلی نکته لطیفیه یعنی استانداردهای علمی که امروز در دانشگاه ها در سطح دنیا راج به یک مطلب از این تاریخی خیلی بررسی میکنن بررسی این نکته در فقه ما خیلی راحت شده نسبتا الان اینکه حالا سر درست مثلا وقتی عبدالرحمن نصیابه اسمش در فهارس ما نیامده این معنیش اینه که احادیثش به صورت نبوده چون احادیثی که به صورت نوشتاری بوده اون به شاگردش زده شاگرد به شاگرد میده بعد تو فهارس میامده سفر اومدن فهارس اینجوری بود پس اینجور ما میفهمیم که عبدالرحمن بن صیابه این مطلب رو از امام صادق شنیده چون اون چی که امام فرمودن که قطعاً شفاهیه یه موارد خاصی که حذر نامه نوشته باشن پس حدیث صدورش در مدینه درو شفاهی بوده ایشون هم در کوفه لاقل به مقدار معلومات ما نه به مقدار واقع حد علم ما چرا؟ چون در فهارس اصحاب اسمشون نیامده اگر اسم کسی در فهارس نیامده یعنی کتابهاش به صورت کتری نبوده رو به صورت شفایی بود اما خود زراره اسمش در کتاب فهرست نجاشی نیامده من تو فهرست شیخ توسی با یک جوری آمده کار نمیخوام و حقم با نجاشیه یعنی روایات زراره با اینکه بعضی شواهد نشون می‌ده که, که زراره خودش می‌نوشته. نوشته ها رو اجازه نداده. اگر نوشته هاش اجازه می‌داد این در فهارس ما نقل می‌شد. پس عبدالرحمن بن صیاب هم در حقیقت این مضمون رو از امام صادق نقل کرده تا اینجا اشبویه. دو نفری که بعد از ایشون اثر هر دو صاحب کتاب و هر دو هم معروفن. یکی یونسیب الرحمن که بعدها از مزرگان بغداد یکی حسام محبوب که ظاهرن تا آفه در خوفه بوده دو نفر اشاگرده ایشان حسام محبوب و یونسیب الرحمن این مطلب رو در کتابهاشون اوبردن ببینید چقدر نظر تاریخی لطیف میشه یعنی هم تا که حدیث شفاهی بوده و که این حدیث کتبی شده و در چه ای نوشته شده کسی که نوشته دو نفره، هر دو از اجلاع از خواب و کتاب هاشون هم فوق العاده مشهوره یکی یونس و یکی حساب محبوب و هر دو نسخه هم تو قوم نخل شده این از فوائد تاریخ شناسی حدیثه ما ارز کردیم که اینا رو به سند نخونیم فلان ان فلان اینا هر کدومشون تاریخی هم پس این دوتا حدیث از دو نسخه معروف یکی از کوفه مستقیمن دقوم آمده یکی از بغدال دقوم آمده این دو تا حدیثی که با این ترتیب هست اینا تاریخ نوشتارشن هم واضحه خود عبدالرحمن بن سیابه توصیق رسمی نداره بعضی از شواهد در شراحالش هست مثلا حضرت ایشون با اینکه که بوده احتمالا شخصیت محترمی بوده در کوفه اه شخصیت اجتماعیش کاملا محسوسه از خلال روایان و به نظر من اصلا شاید یک شخصیت متحرکی هم بوده یعنی اینطور فیلی ساکت ساکت هم نبوده حضرت صادق توسطی ایشان هزار دینار میفرستن که به کسانی که در خروج بازه در ایام مسلحانه ای مجبور مجروح شدن به اونها برن. اصیب بخشیم کشته شدن شاید شدن به اونا پول برسنه همین عبدالرحمن و به هر حال مجموعه شواهدی رو که انسان در شرحال رجالیش نگاه میکنه از یک طرف و بعد نگاه میکنیم ادهی از بزرگان ما مثل همین یونوس مثل یه هستان من این ادلا از بزرگان اجله اصحابه روایات این رو آورده این نشون میده که انصافا یک بوتوغ مثلا 7-8 درسلی رو کاملا اثبات میکنه شاید برای بعضی تا 90 درسل انصافا قابل اعتماده اجمالا قابل اعتماده و شخصیت اجتماعی هم هست روایت چند بد نیست؟ میشه گفت گذر مشاهیر هم به یک معنای حساب میشه این راجع به سند کلینی اعتمال نقل زمان از نون و یه چیزا وقتی هدید شفایی میشه چرا؟ اما چون در دونست ها آمده، در این دونست ها دیگه جنبه های نقل شفاییش کم میشه اون وقت در نسخه دیگر این نسخه بوده که کلینی داشته نسخه دیگر نسخه که صدوق داشته این نسخه فقط مشکل سندی سر محمد ابن موسف ابن المتوکل از کردیم جزبه مشایخ مشهور صدوق توصیق سریحی نداره لیکن مثلا علامه رحمه الله از متاخرین بدم نیست انصافا قابل قبوله آهای خویی توصیق متاخرین قبول نمی کنه لیکن به نظر ما کلا ما چون در خبر غالب قرائن هستیم مگه با هم راه قرائن باشه قابل قبوله اینجا چرا قرائن تغییرش میکنه وقتی ایشون از عبدالله بن جعفر همیری که بسیار بسیار مرد بزرگواری بزرگ فوق العاده ایشون از احمد بن محمد بن که جزء اجلا و واقعا فوق العاده های قومه در همه جهاتش فقهش حدیثش و کردیم ایشون به کوفه سفر کردند و عده از مصادر مهم کوفه رو به یکیشم کتاب هستن محبوبه ما ده ها و ده ها سند داریم در اجازات و غیره که احمد اشعری از حسن محبوب نهر کرده خیلی واضحه ایشون از عبدالرحمن نمیده سیاره خب پس کاملا واضح شد که حدیث اصلش به کجا بوده در قوم آمده دو نسخه معتبر یکی نسخه کتاب یونوست یکی نسخه کتاب حسن محبوب اشکال در اینه که در نسخه کتاب کافی این تو الغیبتو ان تقول خب اولاً خب گفتن که چون الفلان دیگه برای جنسی اداره استفاده هست رو میکنه پس معنای غیبت اینه پیش که لازم بحثه فقهی اونا پیش کشیدن که این عبارت چه میکنه بکنه اون وقتا هم داره که ماستر الله علی در که غیبت اصطلاحاً در کاری که طرف انجام داده نمیگه گفته بشه نه ماستر الله ما فعله و شخصه این یک مشکل در این روایت بعدم یک نیم سطری در نسخه کافی هست و عمل امر و ظاهر و مثل حدت و اجله فلا این فلا هم خیلی عجیبه فلا یعنی آتم باید مناشین باشه فلای سبغیبت باید اینجور باشه وقت لا در اینجا استعمال بشه مثل لیسه یا لیسه استعمال بشه مثل لا یعنی برای نقیه به اصطلاب برای مفادکانه تامه خیلی بعید اینجا مفادکانه نارسه سلبوته لا به مفادکانه نارسه در اینجا خیلی همچین بعید به نظر میرسه علایه حالین و امل امر و ظاهر و فی مثل حدت و اجل فلا بقیهش هم مثل هم اما در کتاب در نسخه حسن و محبوب اینم نرغیبت بود. یک انمم داره نه الغیبته انکبود. اونشان سو تام و تا دوسا. هم فرق داره. مضافا که اون نینصد هم نداره. البته اینجا بعضی از آثار برش بار شد چون در فقه آقایان بررسی کردن ما یه مقدار روایت بررسی میکنیم ببینیم چیکار کنیم. اصولاً در این جور مواردی که پیش میاد ما زیاد داریم تو احادیث ما بین کافی و بین فریق مثلا بین کافی و بین صدوق البته اختلاف مرحوم کلینی با صدوق فقط تو فقیه نیست اشتباه نشد مثلا همین کتاب توحید در نظر وقتی حساب میکردم توی فیهرزش به خود کتاب مراجعه در نظر بیست و خوردهی مورد مرحوم صدوق از کلینی نقوم میکنه در قده از عذب هم مشترکه با توحید کلینی چون کلینیم اول کافی توحیده و اونجا هم گاهی اختلاف داره سند هم یکیه اینو ما یه ای وقتی هم از کردیم و البته برای مایی که دور از آبادی هستیم مایی که خارج از گود هستیم انصافا مشکله بعد از هزار و سال حکم بکنیم یه است که میدونیم ذکر شده توی بحث براعتم یکی از بحث حدیث مهمه چون بعضی از آیون حدیث رفت قبول نکنه حدیث هج به قبول کر ما الله عن العباد و موضوع عنه خب این حدیث رو از قلم تو جمال اله درفی بعض از نسخ ما الله علمه عن العباد نه این نسخ نیست مثلا همین قائل معتبره که اگر ما الله علمه عن العباد باشه این رفع دراعت نداره اما ما الله عن العباد باشه رفع دراعت داره و همین معنام رو قبول می‌کنه و چون همین معنام رو اختیار براءت شرعی میکنه دقیقاً خب دیگم حدیث پای کلیدیه این حدیث در کافی مرحوم در کافی در باب توحید آمده و در کافی مرحوم صدوق هم آمده حالا در توحید باشد در توحید مرحوم صدوق هم بایی لفظش رو در توحید صدوق آمده سند هم یکیه دقیقا یکیه کلینی اینجوری نرکه ما هجبالله همه رو صدوق نرکه ما هجبالله علمه اختلاف نسخه هم دو مستره نه اختلاف نسخه در کتاب صدوق آمده ما حجبم لاه علمه در نسخ صدوق توحید صدوق در توحید کافی آمده ما حجبم <تصفيق> من اگه بخوام مواردی که بین صدوق و بین کلینی اختلاف آمده و این اختلاف منشه آثار در فقه یا در فصل اصول شده بگم خودش یک شرقی داره جای دیگه هم داریم. یه بحثش سر همینه که اینجا چه کار بکنیم اصلا همینجا الان بین عمالی شیخ ص با عبارت شیخ کلیمی فرق میکنه اولا ظاهر عبارت کلیمی انحصاره قیبت فقط همینه ظاهرش ظاهر عبارت شیخ صدوق این یک خرده از قیبته این نمیل قیبه خب این دو تا مهمگه خیلی فرق میکنه بعد اون امر ظاهر در امر ظاهر میگه قیبت نیز از یه حدیث مشهوری اهل سنت گفتن در امر ظاهر پیغمبر با اشگه قیبتش کرده که اینم باز اصحاب ما بحث کردن اما تو نسخه صدوق نیست چه کار باید کرد؟ ببینید ما غیر از اینم داریم من خلاصه کارهایی که در این مدت یعنی در 1200 سال در فقه اسلام و حدیث اسلام شده اینو برای شما اینجا عرض میکنم کنم کارهایی که شده که چیکار کار بکنیم و چی یوری اختیار یک راهیچ که ادهی زیادی رفتن و این راه امدهتن کسان رفتن که قائل به حجیت تعبدی خبر. مثل مرحوم استاد و خلاصیش اینه هر طور قبول می‌کنید اینم حجتتونه حجت. چون سراذی این صحیفه قبول می‌کنید سرا هم صحیفه را می‌ویند. اصلا صد در صد دوباره ما دو بار ما مصادره فرموده‌بوشه. ما توضیحاتش رو سابقا هر تو اهل سنت هم داریم تو شیعه هم دارین این اختصاص به امام استاد هم دارن مثلا ایشون در درس هم خیلی وقت بگوین چون این صحیفه ما قبولش می‌کنید. ولو در یک نسخه خطی جور دیگه اومده چون هر سال و ساید به کتاب تحذیب سعیه چون تو بعضی از اون سخه جور دیگه آمده که ما یاد قبول میکنم نمیخوانه بحثش الان مطرح بکنم ما تو درس مزیزی شیدیم چاپ هم شده البته اخصاص درس ندارم یک راهش اینه که ما هر دو رو قبول بکنیم. عرض کردیم این تو سنیام داریم تو شیام بود. دو است که بیشتر در دنیا شیعه معروفه و اون که اگر دوران امرین کلینی و حدوق بشه کلینی مقدم بشه تو دیگه بحثام زیاد گفتن چون کلینی از بحث است من عرض کردم مرقوم نجاشی راجع به کلینی تعبیری داره تا اونجایی که من میذارم راجع هیچ خاص دیگه نگفته راجع به کلینی میفرسته او سق الناس فی الحدیث و هم فی این من نگیدم در نجاشی من نجاشی شد مثلا با توجه چند بار مثلا که از التافظ بده این عبارت الان یادم میاد که این چین تعبیر که راجع به مرحوم کلینی میکنه حتی راجع به مرحوم شیخ توسی خیلی مثلا سقتون اینون اسم شیخ توسی و ابو جبر محاندوله هست خیلی تجریع از شیخ توسی نمی اما نصد به کلینی عبارت خاصی داره رضا معروف شده به اینکه که مرحوم یعنی علام در جواهر هم هست, هست که دوران هم بین کلینی و بین صدوق بشه کلینی از وقتی اینا راه دیگری که که کلینی از وصیت کلینی راه سوم یه راهی است که متعارف در میان اهل سنت بشد و در کتب حدیثشون درایتون حدیثا تفسیر رو باز کرده تحت همین عنوان اسمش از عنوان زیادت السره یعنی اگه ما دو تا خبر داشتیم هر دوام ثقه بودن یکی از این ثغتین یک زیادی نقل کرده همینجا مثل اینجا این در کتاب احل سنت اگر آن بخواد نگاه کنه همین کتابی که در حدیث دارن مثل تدریب و راوی و الکفای و دیگران بحثی دارن به نام زیادت و سقه روشن شد؟ حاصل بحثم روشنه دو تا راوی سقه متن نرمون کنه یکیش زیادی داره در میان اهل سنت این نسبتا زیاده و مخصوصا که اونها به راوی واحدم کار ندارن تو تو واحدم میشه گاهی شده یک حادثه ای و عبدالله نحباس نحب میکنه جابر هم نحب میکنه یکی زیادتر داره حادثه هم واحده هست کلمات هم واحده تاریخش هم واحده مثلا میگه در پران سفر که با رسول الله بودی پیغمبر اینجوری گفت یکی یه متن هم میکنه یکی یک کم زیادی هم داره این مبتلا بهشونه طبعا خبر سقه پیش اونا حجته چرا زیادی سقه رو بحث میکنن؟ چون میگن سقی دیگر نقل نکر نرد کرده اینو نقل نکرده این قرینه بشه که کمی خچی درش بشه اونجا هم ادعی زیادی سقر قبول دارن ادعی هم قبول ندارن با هم مبانی که دارن پس ما این رو اگر بخوایم به اصطلاح متعارفی که الان در دنیای اهل سنت که متعارف دنیای حدیث اون بوده اون رای که اصطلاح بوده این تحت عنوان زیادت سقه میشه که ما ببینیم که آیا قبول بکنیم زیادی سهل رو یا اینم بحث احتمال سه احتمال چهارم که چه نه چون دو تا نسخ مختلفه اصولا ما وصولی پیدا نمیتونیم بکنیم چون اینم صحیحه اونم صحیحه گفت قد ما و انتو ما رئیسا بلده کما قصه زنبوریه داره فمن یه احکام بینکنم یکی بنابرای که خود رأسا با هم اختلاف پیدا بکنن، راه پیدا کردنش مشکله چون هم یونوس بن عبد و احمان و هم حسن محبوب اصولا معلوم چه حدیث واحد در دو مستر با اختلاف آمده ما فعلا نمیتونیم یک مستر رو بر مستر رو ترجیح بدیم اینم اگراه دیگری راه پنجم همون راهیست که کرارند خود ما رفتیم اون مسئله با شواهد و قرائن تجمیع شواهد و قرائن بکنیم و ترجیح بدیم یک متن رو و بگیم مثلا این متن به نظر میاد درست باشه اما راجع به مطالبی که در اینجا گفته شد. اما اینکه ما حجیت خبر سقل قبول بکنیم و بگیم هر دو متن خیلی بعیده یعنی مخصر مرحوم استاد که مبناشون در حجیت خبر سقل سیری و اغلاست بعید و اغلا این خبر رو با این خودسات دو تا خبر مستقله و ما عدلیت عبد اینم بگیر اونم بگیره به زهر من خیلی بد نه خود مبنی وجوه خبر ثقر هم به مبنی اوغلا قبول نداریم که اوغلا همش مبنی باشه چون خود رو هم قبول نداریم اما بعید در مثل این جور جاها یک سیری از اوغلا باشه از کردم چون اخیراً وارد بحث سیره شدیم مراد ما از سیری اوغلا هم در اینجا یعنی سیری که متعارف مردم داره و این سیری اگر بخواد به حد حجتی از درسه امروزیان نصف به اضافه یک کافی نیست ینا یعنی جماعه ما حتی آمارگیری بکنیم بگیم 55 درصد اوغلا همینطور میفهمن که آیه خودی باز هم این کافی نیست اگر مردم انسانی نسبتاً برسه ما متأسفانه در حوزه خودمون آمارگیری نکرده متأسفانه چون آمارگیری نذیم ترین باید به حدود 80 85 درصد برسه به 55 درصد سیر. چون سیره باید به مقداری واضح بشه که حجت شرعی ما بنا به الله بشه ما این یعنی پنجا و پنج و شست درصدم هم کافی نیست نه نصفه به یه نصفه اضافه پنج درستد هم کافی نیست باید یک درجه از وضوح برسه که شارع رو اون اعتماد بکنه به احتجاج بکنه به ما و این حجت بود تو چون رو عمل بکرده و این نمیشه مگر اینکه درجه سیده به رو هشتاد درستد یعنی واقعا 80 درصد اغلاع قبول بکنن با این که یک روایت واحد مال یک شخص واحد از امام فقط یک مثلا انمن افتاده یک جاشه القیبه همه مثل همدیگه وقتی بگیم این دوتا دوتا روایت مستقل هست فکر نمیکنم سیره با این مطلب خیلی موافقت بکنه اصل انعقاد یک سیره واضح جلی اغلایی بر این مطلب روشن نیست اما مسئله دوران هم بین کافی و بین فقی روشن شد این اصلا اشتباه پیش آمده دورانه بین کافی و عزبتیت کافی مفرح نیست کافی کاملا زابق کافی دقیقا اون چی در نسخه یونس نبدالرحمن بوده نقل کرده ما به کافی حرف نداریم روشن شد چی خود بگم؟ اینا خیال میکنن مستر دوتاره باید یکیه کلینی دقت بیشتر در نقل کرده یا صدوق وقت میگن کافی عزبته اصلا دو دوتاره نه این که یکیه از وفیت کافی معنیش اینه که اون که در کتاب بوده به جقب نقل کرده ما هم بحث نداریم انم هم کلام مرموم صدو از کتاب حسن محبوب نقل کرده ایشون از کتاب کافی نقل کرده مشکل سر کافی نیست نباید از وفیت کافی رو اینجا بکشیم بله ممکن است بگیم کافی اعتبادشی بوده که نسخه یونس اجل و شعنن بله راست انصافه ما یونس نبدالرحمن منحیص المجموع اجل و شعنن از حسن محمود داریم اختیار نسخه یونس کرده نه به معنای این که صدوق اشتباه کرده یا اضافه کرده یا کم کرده نه نه دوتا نسخه است اصلا این آیان ما توجه هم نکرد این بحث عذبتیت اینجا نمیاد بحث از وثیقت روی موانی اصحاب ما که کارهاشون فهرستی بوده و مصادرشون واضح بوده نمیاد دو تا مستر مختلف مختلفن دقت کردی یک شبهه ای در حوزه های ما که میگن کافی از بته. نه حتی بعضی عکسش هم گفتن چون صدوق بعد از ایشانه صدوق عمدی این متن ورده که بگه کافی اشتباه کرده اینم نیست این در در قم دو نسخه بوده دقت بکنید به نظر کافی نسخه یونوس اثر بوده به نظر کافی و به نظر صدوب نسخه محبوب اصح بوده حدیث هم از یک نفره دقیق کردیم نه اینکه که این آقا کم کرده یا اون آقا زیاد کرده چرا چی داعی داریم که ما کم و زیاد را نسبت ببینیم دکیم این آقا عذبته یا اون آقا عذبته هر دو زابط هر دو هر دو بزرگ باست الان مقابل شما ببینید شما الان مثلا در قرن 15 هستی مقابلتون نسخه از کافی هست و امالی اینه ببینیم به قرن 4 در قرن 4 دو تا نسخه بوده یونسب و نظرهان و حسن محبوب دقت ممکن است شما بگید به نظر من متن کافی بهتره یه حاذیه به نظر متن امالی بهتر اون سال زمان که میاد خیلی بحثای اینمی رو براموشرح میده شما این اون دوره زمان بردید تا بحث واسون آسان بشه الان مقابل شما دو تا کتابه اون زمانم تو اون دو تا کتاب بود هیچ فرقی نمی کنه اگر الان یک نفر عالم میگه آقا من نسخه کافی رو ترجیح میدم یک عالم میگه من نسخه عمالی رو ترجیح میدم این اعتباریت نیست دو تا تفکر دو تا طرز فکر این میگه شواهد من میگه این نسخه به عین این متن قرن 4 در تهران به اتفاق این عین همین متن زمان شما اینکه در اون زمان کتاب یونوس بوده و حسن محبوب حالا کتاب امانی هست و کافی بله مرحوم کلی نظر مقالا کشین بوده که نسخه یونوس بهتره البته یونوس انصافاً جلو شننه حقش همینطوره و مرحوم صدوق عقیدش این بوده که نسخه حسن محبوب خصوصاً بلا حاضر راوی نسخه خب بلا اشکال راوی نسخه حسن محبوب مهمتره که اون احمد اشعری باشه و اگر ما باشیم و الان خود ما دورا دور به ذهن خود ما این طور میرسه که انصافا با مجموعه شواهد همون نسخه عمالی بهتره همون نسخه اصلاً محبوب بهتره از کارم الان ما نمیتونیم جذب پیدا بکنم اولاً این انصافا جای بحث نیست که قیبت اختصاصه به ما سطره الله نداره ما تو زده دارن انت... ما سطره الله علیه ما سطره الله یعنی عیوب خلقتی قطعا وجزمن قیبت اهم از اونه این درشی چوبه ایما نداریم کسی افعال زش انجام داد نمیخواست کسی بزنه یا حتی افعال متوسط نمیخواست کسی بزنه خب گفتن این قیبته این ما سطره الله نیست اینجا اصناد سطر الالله نیست که ما سطره الله یعنی چیزی که خداوند درو در خرم هم اما علنی نیست فرض کنید مثلا فرض کن در خانه به طور متوارع فرض کنید یک بار مثلا مثلا مریض قش یک مرض خاصی کسی خبر نداره ما ستر الله مراد از ما ستر الله اینه وقتی لذاب به ذهن میاد که این روایت مبارکه ناظر باشه ناظر باشه به عنوان و اصلی و خلقتی نه افعال زشت نه امور اختیاری نه کار بدی هم بکنم نه همم نهو مسطر داریم ما گناه رو پوشوندی گناه رو خدا پوشون نه اینکه ستره الله یعنی این عیب رو مثلا اینکه خودش سر کرده کاری نکرده که ظاهرا ما ستره الله شامله مثل افعال زشت خودش نمیشه خودش این کار پوشون از, از خونه کار انجام داده من اونجا بودم این سطره ها الان هست ظاهرا رسوای الهی چید دیگریه دیگر ظاهرا ما سطره الله و ولیزا اگه دقت کنیم در همین تفسیر یونس من و ام ملعن رو ظاهر مثل هدهت ولی عجله اینا رو آورده نه عمال زش امره تکمیلیه کسی زاده اجوله در کارات یا تنده من آراهی که گفتم پنجتر یکی دیگه گردم رم یه رأی دیگری هم به اصطلاح اون من حالا این رو تکمیل کنم بعد برای اگرم به ما نحنفی اونجا بود از کلم ما به ذهنمون میاد این مسئله برای تونجایی گفته نشده لیکن با غراره شباهد مثل ابن الولید که استاد صدوقه اعتقادش این بوده که این عمل امروز ظاهر چون در نسخه حسن محبوب یا از اضافات یونوسه یا از اشتباه نسخه محمد ابن این یادم رفتون بکنم چون خود یونوسه همه الله متهم به قیاس به قیاس یه رنرعی به اصطلاح یعنی احتمال داره که صدوق اون نسخه رو نیورده چون شاگرد ابن الغلیده و تابه ابن الغلیده مزدر تصیح و توصیه. چرا؟ چون وقتی ابن الغلید میگه ما مقایسه رو که این یونس رو با متن حسن محبوب این نیم رو توش نیست و عمل امر ظاهر از اون بر همه از کردم شبهه هست در یونس که قائل به رعی و قیاس بوده اینا شد مثلا این شبهه رو میکردن که یونس منطوق منتو... حدیثه که آورده مفهومم خودش اضافه کرده چون ایمان فهم القی و انتبود فی اخی که ما ستره الله علیه خب مفهومش اینه که ما از ما کان از هر الله اینه که خدا ظاهر کرده لایز بقیه و عمل ام امر ظاهر فلان دقیقاً واقعاً شلون می‌کره خب این اجمالند قومی ها که با یونس خوب نبودن به جای جه... بحثش نیست عرض کردم من و حتی در اون رواست معروف داره که قول پدار روی آبا ما اشد انکار که علا اهل حدیث اصلا در مقابل قومی ها بوده چون اهل حدیث قومی ها مراده کردید چون من پنج تا راه را عرض کردم می را یادم رفت بگم یک راه دیگه هم این بود که اینا می یا یونس اشتهاد خودش در حدیث اضافه اضاف من ارز کردم از اون چند بار و مصدر خیلی مهم میشم مقدمه کتاب مخصوط شیخ توسیه شیخ توسیم که اصحاب ما در نقل حدیث اینقدر مهید بودن که حتی لفظ حدیث رو عوض نمی کردن مثلا اگه گفته یلزم او ها انیفعل نمونه یجبا علیه انیفعل. یلزم رو تفسیر به یجب نمید بله آقا نقل به معنا نیست اضافه کردن به اصطلاح یک مطلبی یعنی منطوب مفهوم کلام رو در الفاظ که نقل به معنا غیر از اینه نه ایشون میگه که نه میگه الاکونت طوری دل معنا فلاوست این نقلب معنا مثل فصل محمد مسلم که از امام بعد بعدها مثل امثال شیخ صدو که مکتوب های پیشون بود اصلا الفاظ حدیث رو به هیچ وجه عوض نمی کردن هم اینطوری شد شیخ توسی در کتاب محسوسی نمیگید راه دیگه هم اینه که ما بگیم اصلا نسخه یونس مشکل داره چون یا یونس مفهوم حدیث رو اضافه کرده یا نسخه محمد ابن ایسا مشکل داره اینم چون چند تا راه رو گفتیم در طول تاریخ فرهشی پیش آمده اینم راه ششم به استود حالا برگردیم به قرائم انصاف قضیه اگر ما باشیم و قرائم قرائم اگر نسخه حسن محمولی انصافا همینطوره اولا ما ستر الله علیه. اونم ا امر ظاهر رو مثل عجله به هده گرفته که اینها دیده میشه افراد دارن مراد از ما سطره الله علیه یعنی ایوب خلقتی که خدا قرار داده اما مستوره کسی نمیدونه در مقابل ایوب خلقتی که خدا داده و ظاهره مثل اجله انسان مستجر در کاره یا تنده اخلاق تندی داره برخورد تندی داره اگر هده باشه برخورد تندی با افراد داره وقت به ذهن میاد که ا صحیح حدیث این باشه این نمن القیبه همسا که صدوق مهم شد بعید این باشه القیبه ان انتقوله فی اخیق چون اگه القیبه باشه منحصر به این ظاهرین تابیر انحصاره اونی که بیشتر با قرائم میخوره این یک فرد از قیبهه یعنی اما میخواد به فرمان قیبه فقط افعال زشتی نیست که افراد نشون نمیدن و غائبه. یک امر خلقتی هم باشه که سطر الله علیه و دیده نمیشه و ظاهر نیست تو اون رو بخوای بگی، اونم حیبته فهم نمیکنه. چون ممکن است یک ای در انسان باشه لیکن محل ظهورش نیست یعنی در اجتماع ظاهر نمیشه اما کن، مثلا یه قسمت از بدنش مثلا قدیمی ها ماه گرفتگی داره اما زیر لباسی دیده نمیشه برست داره زیر لباسی دیده نمیشه اگر این رو بگی این غیبته اما امر ظاهر مثل تند اخلاقه قوم اینو که هر نمینه تند داره امر ظاهر رو نباید غیبت کرد این ظاهرا حدیث مبارک ناظر به اینه اگر ناظر به این باشه انصاف قضیه باید انمن من غیبه باشه نه الغیبه انتقول یعنی شواهدی که انسان با مجموعه در میاره بیشتر مناسب است به اینکه ان من توش باشه که تبعیض باشه نه اینکه منحصر از قیبت در این معن و اما نسبت به امر ظاهر حالا غیر از اون حدیثی که اهل سنت از, از رسول الله که امر ظاهر رو نسبت به عایشه سرنقیبت کرد بعید نیست اگر امر ظاهر به یک نحوه خاصی یعنی اگر واقعا حتم تونه اخلاقی که طرف داره مثلا بگه من می‌خوام برم فلان قسمت یا فلان اداره شما این اخلاق تونه منو نگیو اونها ولی ظاهر جای دیگه می دونم. بعید نیست این هم باشه یعنی اگر ما اطلاق انتبول فی اخیق ما یکره هولو سمعه اون آفقه قیل از این عنوان هست دقیق ما یکره هولو سمعه اگر مطلبی رو بگی که اون بدش میاد اگر بشنا بدش بود دقیق بکنیم. اگر عنوان ما یکره هولو سمعه شامل امر ظاهر هم میشه تا گاهی میشه میخواد فلان اداره نگی اونا که من تندی دارم من روزی 4 اونجا اصلا خودم اخلاقم نگهدیدم 4 سال مشکل نداره من با مثال میخوام بگم مثلا فرق داره با اونجا با اینجا میگی این خب میگه امر ظاهریش کار نداره نمیگه سوالی از اداره نمیدونه این اینطوریه تو ک مرحله جدا الله امر ظاهری هم هست حده مثل هده. موظفن بیم که گاهگاه همون امر ظاهرم که که هست کنم احتمالا آیشه با یه لفظ بدی با یه وضع اهانت‌آمیزی، ها میزی وقت معیارش این باشه با یه لفظی به تعبیری که جلوب اونه میگفته پشت سرش میگفتی لذا پیغمبر فرم این قیبته نه یعنی به این تعبیر شما جلوش نگیر اینم یک درجه از قیبت به این تعبیر یه درمیگه خدا من مثلا شما رو در این قد و یه بحث که به نحوه مثلا الفاظ احانت اضافه برای این که معیارش رو این بگیرین که پیغمبر بوفران اقتبته ها به این بگیریم تعبیری که جلوش نمی خوب دقیق میکنی ولو امر ظاهره اما تعبیری که جلوش نمی این یک دو یا همون امر ظاهر رو اگر این ناراحت میشه حاضر نیست که تو پسترش بگیر همین تندی همین عجله اگر حاضر نیست میگه من تندی دارم عزیزی خون مردم بفرمی شما پشت سر من نگید به کسی که نمیدونه نگید سوال عده از های ما تتواه دارن گفتن ولو اینطور بگه چون گفته و امر امروز ظاهر فلا این خیبت میگه از اون ولی داره که لو کره او تمه او کره اون خیبته منوشون منشه اختلاف چیه به ذهن میاد که بعید نظر مبارک امام این باشه که امر ظاهر مطلقا گفتنش غیبت نیست ولو همه سمعهو کره هم تمام نطقه فندی اینه ما میتوانیم با متن کافی این رو اثبات بکنیم روشن شد بگیم چون امر ظاهره امام فرمود قیبت نیست ولو طبق اون تفسیر دیگه غیبت حساب میشه یکره هولو سمنه انصافاً با اعتماد با این حدیث با اختلاف محط بسیار بسیار مشکله و اصولاً انسان احساس میکنه که انداما این عبارت عمل امروز ظاهر یک مقداری با قول بعضی مثل من رو ماید در جای دیگه میگه در حاشه بوده بعد در محط وارد شده یا اضافه کرده اون محط رو که صدوق نرم کرده به ذهنیان انسجام بیشتری بوده ان من الغيبه ان تهول في اخيك موفق سر الله عليه و والبهتان ان تقور فی مالي سفي خیلی انسجام عباراتیش واضحه و ای ویرام اسم نبر تو نمی اسم مثل حدت العجله و عمل امر ظاهر فيه صلا یعنی فليس بغيبه مراد از لا یعنی ليس بغيبه علی حال به ذهن میاد که به ذهن ما حق با مرحوم صدوق باشه و متن حسن ابن محبوب سالم تره. حالا اون متن یونست شبون شکلی پیدا شده کجا منشه اشکالی کنم سلالله علی محمد و عالی